دوستان به کلاس دیگری از دانشکدی کتاب مقدس خوش اومدین. خوشحالیم که تصمیم گرفتید در کلاس دیگری از کتاب مقدس با ما هم راه باشید. امروز ما به مویزی سرکو که در کتاب متا آمده نگاهی خواهیم انداخت. شاید این به عنوان یکی از مهمترین پیام ها شناخته شده و میتونیم بگیم یکی از پیام‌هایی که درک اون بسیار سخته. وقتی ایسا مور دعوت میکنه که به شاگردان او بر بالای کوه ملحق بشیم چیزهای زیادی برای و موختن به من و شما داره بیاید با هم به درس امروز معلممون گوش کنیم دانشجویان عزیز سلام در این جلسه میخوام بر بزرگترین و معروفترین گفتگوی عیسی با همدیگه تمرکز کنیم به روشی که متا برای شرح موقعیتی که در اون عیسی بزرگترین گفتگوش رو انجام داده توجه کنید عیسی در تمام جلیل میگشت در کنیسه های اونها تعلیم میداد و مجده پادشاهی خدا را اعلام میکرد و بیماریها و ناخوشیهای مردم را شفا میبخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمامی کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند مسروقان و مفلوجان را نزد او میآوردند و او آنان را شفا میبخشید. جمعیت کسیری نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدن وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردان به نزد او آمدند و او دهان گشوده به آنان چنین تعلیم داد این زمینه معروفترین ترین گفتگوی عیسی هست که به معزه سر کوه معروفه اگرچه ما به اون معزه بالای کوه میگیم ولی اصولا اون یک موعظه نبود اون بیشتر شبیه اولین گردهمایی مسیحیان بود عیسی با موعظه بالای کوه کار بسیار استراتژیکی انجام داد. عیسی به هزاران نفر در سرازیری مشرف به دریای جلیل خدمت می کرد. اونها کسانی بودند که انواع مشکلات را داشتند. از نظر عیسی اونها نماد مشکلات انسانی بودند. حالا برای اینکه به تمامی این مشکلات رسیدگی کنه، او کار بسیار استراتژیکی انجام داد. او به جای بلندتری در بالای کوه رفت و از عده خاصی دعوت کرد که اونجا با او در اولین گردهمایی همایی مسیحیان همراه باشند از هر کدام اونها به طور شخصی دعوت شده بود که در این گرد همایی شرکت کنند زمینه این تعلیم که در متا پنج، شش و هفت ثبت شده بسیار مهمه لازمه که زمینه و محتوای این معذر رو درک کنیم زمینه و یا محیط این تعالیم محلی هست که از اونجا شما میتونید محتوای این سباب بسیار مهم رو ملاحظه کنید من خادمینی رو میشناسم که میگن شما میتونید متا پنج و و هفت رو از توی انجیلتون در بیارید و بقیه انجیل رو کنار بذارید. چون این سباب خلاصه حقایق کل انجیل هست. البته من با این موافق نیستم. چون در اون صورت باید تمام کتاب های علاقم رو کنار بذارم. اما موافق این هستم که در باپای پنج و و هفت متا عیسی اساس شریعت و تعالیم انبیا رو به ما میگه. او اساس تعالیم کتاب مقدسی مخصوصاً اخلاقیات و روابط انسانی رو برای ما بازگو میکنه قبل از اینکه به این سباب نگاه کنیم که به اعتقاد بعضی ها یک کتاب مقدس کوچک هست، بیایید یک بار دیگه به محیطی که تعالیم عیسی در اون داده می‌شد نگاهی بندازیم. وقتی عیسی از بین جمعیتی با تمام نیازهاشون کسانی رو دعوت کرد که در اولین گردهمایی همایی با او باشند، او جمعیت رو به دو گروه تقسیم کرد. وقتی عیسی گرد همایی خودش رو ترتیب میداد و کسانی رو انتخاب می کرد که همراه او باشن دست کم میخواست که اون افراد بخشی از راه حل و جوابهای او برای مشکلات انسانی باشه جمعیت پای کوه خودشون بخشی از مشکلات بودن و یا هر کدام یک علامت سوال بودن. پس چالشی که شما اینجا پیش رو دارید اینه که شما کجا قرار دارید خدا گفتگوش رو در عهد قدیم با ما اینطور شروع میکنه کجا هستی و این همون چالشیه که ما در بررسی زمینه موعظه بالای کوه با اون مواجه هستیم کجا هستی آیا در پایین کوه هستید و هنوز جزئی از مشکلات هستید یا بر فراز کوه به همراه عیسی هستید؟ آیا عضویت شما در کلیسا یا حضورتون در کلاس هایی مثل این حداقل این احساس رو به شما میده که بخشی از راه حل باشید؟ آیا بخشی از جواب او هستید و یا یک علامت سوال هستید این چالشی هست که شما در بررسی موعظه سر کوه با اون مواجه میشید. به قول دکتر مارتین لوید جونز زمینه ای را که این تعالیم در آن داده شده میتونیم به عنوان تصویری از نقطه عطفی که منجر به مسیحیت شد ببینیم. اصلا مسیحی یعنی چی؟ معنی شاگرد عیسی مسیح بودن یعنی چی؟ خب یوحنا اون رو به تصویر میکشه و پولس بارها اون رو به عنوان نجات به تصویر میکشه. گاهی در بعضی از متنها در رسالات پولس و در انجیل یوحنا با این عقیده مواجه میشیم که نجات چیزی رایگان هست. به عبارت دیگه برای به دست آوردنش نباید چیزی بپردازید. نجات مربوط به تعهدات شما نیست. مهم فقط تصمیمی هست که می گیرید. اما این روشی نیست که متا انجیل عیسی مسیح یا نقطه عطف یک مسیحی شدن را به ما عرضه میکنه. ببینید دیدگاه متا بیشترین نیست که، این چه نفعی به حال شما داره بلکه از همون ابتدا نظر متا این بوده که این چه نفعی به حال عیسی داره مسئله این نبوده که شما از هاتون با عیسی صحبت کنید بلکه این عیسی بود که از هاش با شما صحبت کرد. چالش این هست آیا میخواهید یکی از پاسخها و راه های او باشید آیا میخواهید خودتون رو وقت به کار عیسی مسیح بکنید عیسی مسیح رویابین بود او مردی بود که رویا داشت او یک خادم بود، او مردی بود که معموریت داشت. حالا اگر فضایی رو که معزه سرکوه در آن عنوان شده بفهمید، خواهید فهمید که این گردهمایی همایی گرد همایی بود. در این اولین گردهمایی همایی مسیح میخواست که رویاش رو با دیگران در میون بذاره و از خادمین تازه کار میخواست که به او کمک کنند تا ماموریتش را انجام بده و رویاش رو تحقق ببخشه. این فضای معزه کوه است. مععزه سر کوه با چالشی به ما عنوان شده که نقطه عطفی در مسیحی شدن هست. حالا آماده ایم که نگاهی به محتوای مععزه سر کوه بندازیم. وقتی عیسی شاگردانش رو در بالای کوه جمع کرد او تعالیمش را با گفتن بعضی رفتارهای زیبا به اونها آغاز کرد تا اونها رو بخشی از راه حل و جواب خودش بکنه. یک بار شنیدم که واعز زبردستی این سؤال رو می آیا احساس آیا که لازم از گردن به بالا معاینه بشید؟ با خودم فکر کردم عجب معایزه خوبی این واقعا معیزه شیوایی هست من هرگز اون رو فراموش نکردم بله هازی میشه گفت که عیسی تعالیمش رو بر بالای کوه با معاینه از گردن به بالا شروع میکنه چون که با تعلیم درباره رفتارها شروع میکنه عیسی همیشه به ما میگفت نگرش موضوع جدی هست اساس گفتگوی او در متاباب شش اینه که چشم چراغ بدن هست اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود اما اگر چشمت فاسد باشد تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت منظور ایسا از چشم دیدگاه شما نگرش شما و طرز نگاه شما به اطراف هست جدیترین سوالی که اغلب باش مواجه میشید اینه رو چطور میبینید؟ دیدگاه شما چیه؟ نگرش شما چیه؟ به قول عیسی طرز نگاه شما میتونه فرق بین بدنی باشه که پر از نور هست یا پر از ظلمت. طرز نگاه شماست که سبب میشه زندگی شاد یا غمگینی داشته باشید. چون که نگرش شما ای جدی هست. عیسی تعالیمش رو بر سر کوه شروع میکنه تا به شاگردانش نشون بده مردمی که پای کوه بودن چه مشکلاتی داشتن. عیسی در مورد رفتارها صحبت میکنه. او معزه سر کوهش رو اینطور شروع میکنه. خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوشا حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد خوشا حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد خوشا به حال پاکتلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشحاب حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خانده خواهند شد. خوشا حال زحمتکشان برای ادالت زیرا ملکوت آسمان ازان ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کازبانه گویند. وقتی عیسی به ما این هشت خوشحاب حال رو میده او طرز نگرش یک شاگرد رو توصیف میکنه. او همچنین شخصیت مربوط به مسیحی بودن را توصیف میکنه آیا شما قسمتی از مشکل هستید یا قسمتی از راه حل آیا بخشی از جواب هستید یا علامت سوال شما کجا هستید آیا مسیحی هستید وقتی محتوای این تعالیم رو مطالعه میکنید اولین چیزی که برای شما عرضه شده شخصیتیه که به عنوان یک مسیحی ترسیم شده کسی که یک جواب یا راه حل هست این خوشا نمای مرکبی از شخصیت مسیحی رو نشون میده وقتی عیسی این خوشابه حال ها رو عنوان میکنه به ما میگه اینجا نمایی از مرد یا زنی هست که راه حل من و جواب من به تمام نیازهای مردم پای کوه هست حالا بیاید این هشت خوشابه حال زیبا رو با هم خلاصوار بررسی کنیم خوشابه حال فقیران در روح معنی این چیه؟ کلمه خوشابه حال یعنی شاد باد یا کسی که به لحاظ روحانی کامیاب هست. و یا در ناحیه فیض قرار داره به عبارت دیگه خوشا چیزیه که خدا به همون منظور انسان رو خلق کرده قبل از اینکه آدم سقوط کنه یک چنین کسی بود اگر واقعا میخواید به لحاظ روحانی کامیاب باشید و یا در ناحیه فیض قرار بگیرید و یا چیزی که خدا براتون در نظر گرفته باشید حتی تا جایی که نه تنها راه های خودتون رو داشته باشید بلکه راه حلی برای دیگران باشید این اولین خوشا که شما باید داشته باشید خوشابه حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است اینها کسانی هستند که آنچه خدا در آسمان اراده کرده بر روی زمین در بعد آسمانی انجام میدن مسکین بودن در روح یعنی چی؟ مسکین بودن در روح بستگی به رفتارتون با خودتون داره باز هم تأکید و تکرار میکنم که تمامی این تعالیم باید در پرتو مشکلات مردم پای کوه درک بشه به پایین کوه نگاه کنید و تمامی اون مشکلات رو ببینید. حالا چیزی که عیسی میگه اینه. آیا میخواید بخشی از راه حل برای نیازهای اون مردم باشید؟ خب اولین چیزی که باید بدونید اینه که شما نمیتونید. شما نمیتونید راه حل اون مشکلات بشید. شما نمیتونید به همه اون مردم کمک کنید. آیا فکر میکنید میتونید تمامی مشکلات کسانی که اون پایین هستند حل کنید؟ نمیتونید. خود شما هرگز جواب نمیشید. من و شما لازمه که متیان پادشاهی باشیم که راه حل هست. من نمیتونم، اما او میتونه. اگر قرار هست که بخشی از راه حل مسیح گونه و جواب مسیح گونه برای نیازهای بشر باشیم، این اولین رفتاریه که ما باید داشته باشیم. وقتی که کتاب مقدس رو میخونید، ملاحظه کنید که خدا چطور این رفتار زیبا رو به مردم میده. اگر شما جز کسانی هستید که در بررسی عهد قدیم با ما همراه بودید، یادتونه که از زندگی موسا چی یاد گرفتیم؟ موسا 120 سال زندگی کرد و این 120 سال به سه دوره چهل ساله تقسیم می شود. خدا به موسا سه درس داد. در چهل سال اول زندگیش خدا به او آموخت که موسا تو هیچ کس نیستی، چهل سال طول کشید که موسا این درس رو یاد بگیره. بعد در چهل سال دوم زندگیش خدا این درس رو به او داد. موسا تو کسی هستی که من میتونم ازش استفاده کنم از اونجایی که خدا در چهل سال اول به زیبایی کار کرد و به موسا یاد داد که هیچ کسی نیست یاد گرفتن درس دوم و قانع کردن او به این که کسی هست که خدا میتونه از او استفاده کنه چهل سال دیگر طول کشید به هر حال در چهل سال سوم زندگی موسا وقتی که بخشی از راه حل و جواب خدا شده بود خدا به او نشون داد که وقتی کسی یاد میگیره هیچ کس نیست خدا میتونه با او چه کارهایی بکنه. در عهد جدید هم همین چیز برای پتروس اتفاق میفته. از لحظه ای که پتروس با عیسی مسیح ملاقات میکنه تا زمانی که او رو سه بار انکار میکنه و به تاریکی پناه میبره و به شدت گریه میکنه او داشت این درس رو میگرفت که او هیچ کس نبود. تا اون موقع او فخر میکرد و میگفت شاید همه تو رو انکار کنن اما من هرگز تو رو انکار نمی کنم. او هیچ کس نیست، اما هنوز این رو یاد نگرفته. اما وقتی به تاریکی پناه میبره و به شدت گریه میکنه، اون وقت میفهمه که هیچی نبوده. وقتی عیسی از مردگان قیام کرد، به طور شخصی بر پتروس ظاهر میشه. دلیلی که اون جلسه خصوصی رو برای پتروس گذاشت، این بود که میخواست پتروس رو برای درس دوم متقاعد کنه. پتروس تو کسی هستی؟ در آخرین باب از انجیل یوحنا بعد از قیام عیسی، شما گفتگوی بین پتروس و عیسی را میبینید. خداوند از پتروس پرسید: پتروس، آیا مرا بیش از اینها محبت می‌کنی؟ وقتی او پاسخ داد، دیگه افتخار نمی‌کرد که محبت او بیشتر از دیگرانه. وقتی خداوند از پتروس این سوال را کرد، او از کلمه یونانی برای محبت استفاده کرد که بهش آگاپه می‌گی. وقتی پتروس پاسخ داد، او از کلمه یونانی فیلئو استفاده کرد. به این معنی که پتروس میگفت خداوندا تو پاسخ را میدانی. من تو را دوست دارم. بعد خداوند به او گفت از بررهای من مراقبت کن. من میخوام کسی مثل تو به گله من خوراک بده. من شخص کمالگرای نمیخوام که چیزهای غیر واقعی از گله من مطالبه کنه. من میخوام به گله من خوراک بدی. ببینید بعد از قیام عیسی پتروس از عیسی آموخت که او کسی هست که عیسی میتونه ازش استفاده کنه. در روز پنتیکاست تمامی دنیا فهمیدند که وقتی کسی یاد بگیره و بفهمه که هیچ کس نیست خدا میتونه با او چی کار کنه. چرا در روز پنتیکاست روح القدس توسط پتروس ظاهر شد؟ به اعتقاد من چون پتروس میدونست که هیچ کس نیست و میدونست که کسی هست. پتروس این نظریه رو میدونست که روح القدس میتونه توسط کسی که یاد گرفته هیچ کس نیست کار کنه. تجربیات افرادی مثل موسا و پتروس معنی مسکینان در روح رو به ما نشون میده به عبارت دیگه تأیید مسکین بودن در روح فروتنی توصیف شده درک مفهوم فروتنی بسیار سخته کاربرد عملی و شخصی اولین خوشا حال رو میشه اینطور بیان کرد خدایا من راه حل نیستم من نمیتونم مشکلات خودم یا مشکلات کس دیگه ای رو حل کنم اما تو میتونی من ایمان دارم که تو راه حلی حل اگر تو با من باشی اون وقت من همین توانایی رو دارم که راه حل و جواب باشم اگر من بخشی از راه حل هستم به این دلیل نیست که من میتونم بلکه به این دلیلی که تو میتونی معنی فقیر بودن در روح این هست یه نفر شعر کوتاهی به من داده که فکر میکنم مثالی از مفهوم فقیر بودن در روح هست اگر شما معلم هستید و تعلیم میدید که میدونم بسیاری از شما این کار رو میکنید مطمئنم که شما قدر این شعر رو درباره معلمی که در روح فقیر هست میدونید او اینطور میگه خداوندا من کی هستم که به فرزندان تو هر روز درس بدم در حالی که خودم میتونم گمراه بشم من به اونها معرفت میآموزم اما میدونم که اونها چقدر ضعیف و لرزانند و میدونم که های معرفت من چه نور کمی دارند به اونها میآموزم که با قدرت اراده کنند و انجام بدن اما حالا میبینم که خودم سرآپا ضعفم به اونها محبت به تمام بشریت و تمام مخلوقات خدا رو یاد میدم اما فهمیدم محبتم لنگ لنگان از پشت سر میاد. خداوندا اگر من هنوز باید راهنمای اونها باشم، بگذار فرزندان ارزشمند تو ببینند که معلمشان بر تو تکیه داره. از خودتون بپرسید آیا من مسکین در روح هستم؟ آیا میدونم دونم که بدون خدا هیچ هستم؟ اگر بتونید بگید بله، اون وقت اولین رفتار زیبا رو یاد گرفتید. ما اولین خوشابهال زیبای مععزه سر کوه رو از ایسا یاد گرفتیم. خوشا حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. دومین خوشا حال زیبا اینه. خوشابه حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. یکی از اولین چیزهایی که منظور عیسی در این خوشابه حال دوم هست اینه که به پایین کوه نگاه کنید. آیا اون مردمان دردمند رو می‌بینید؟ اگر خود هرگز درد نکشیده باشی چطور میتونی فکر کنی که بخشی از راه حل و جواب درد اونها خواهی بود؟ خوشا ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوشا به حال کسانی که رنج میکشند در بررسی عهد قدیم وقتی کتاب ایوب رو میخوندیم یک درس زمیمه هم در اونجا داشتیم که بهش سی دلیل کتاب مقدسی که چرا قوم خدا رنج میکشند گفتیم گفتیم که این یکی از دلایلی که من و شما رنج میکشیم اگر ندونید که درد کشیدن چه حسی داره چطور میتونید یک خادم تسلی دهنده دلسوز باشید کلمه تسلی دهنده یا کسی که با دیگران همدردی میکنه از دو کلمه ی هم و درد تشکیل یافته به معنی اینکه شخص تسلی دهنده خودش درد رو تجربه کرده و با اونها یک احساس مشترک داره وقتی عیسی میگفت گفت به حال ماتمیان زیرایشان تسلی خواهند یافت حداقل این بخشی از منظور عیسی بود اما احتمال دیگری هم هست عیسی وقتی دومین خوشا حالش رو میداد او چیزی بیش از دلسوزی و همدردی رو شهر میداد وقتی یاد گرفتید که در روح مسکین هستید شاید ماتم بگیرید خدا چطور به موسی و و به من و شما یاد میده که ما نمیتونیم به وسیله شکست به اعتقاد من شکست یکی از ابزارهای مردناگه خدا برای اینه که به ما تعلیم بده که باور کنیم در روح مسکین هستیم این خیلی دردناکه که وقتی میخواهید بخشی از راه حل یا جواب باشید اما شکست میخورید شکست بسیار دردناکه ترس از شکست بسیاری از انسانها رو زمینگیر میکنه چونکه چون که شکست بسیار دردناکه. وقتی شما شکست میخورید ماتم میگیرید و قصه میخورید. اما اون شکست شاید روش خدا برای آموختن مفهوم مسکین بودن در روح به شما باشه. خوشابهال زیبای بعدی اینه. خوشابهال حلیمان. حلیم بودن کلمه یه که معمولا درست فهمیده نمیشه مفهوم کتاب مقدسی حلیم بودن ضعف نیست. وقتی به زبان کتاب مقدسی یونانی و عبری نگاه کنید مفهوم کلمه حلیم چیزی مثل اینه اسب وحشی و قدرتمند با قوت زیادی رو تصور کنید اما اسب قدرتمندی که رام نیست این حیوان قدرتمند هرگز لگامی به سر نداشته و زینی به پشتش نبوده تمام قدرت اون حیوان خارج از کنترل هست اون وحشیه اما وقتی شما بتونید به اون دهنه و لگام بزنید و زینی به پشتش بذارید به جایی می رسید که دیگه اون حیوان در مقابل دهنه مقاومتی نمی کنه. وقتی اون حیوان دیگه سعی نمی کنه سوارش رو به زمین بزنه وقتی بالاخره مطیع دهنه میشه یا دهنه رو می پذیره وقتی اون حیوان انضباط لگام و زین رو می پذیره و قابل کنترل میشه حالا اون حیوان حلیم هست. حلیم بودن قدرتیه که رام شده حلیم بودن انزباته وقتی عیسی گفت یوق مرا بردارید و از من یاد بگیرید چون من حلیم هستم منظورش چی بود وقتی ایسا میگفت حلیم هست در واقع منظورش همون چیزی بود که وقتی گفت من همیشه کارهایی رو میکنم که پدر رو خوشنود کنه یا به عبارت دیگه عیسی داشت میگفت من لگام پدر و انضباط اراده پدر رو پذیرفتم و همیشه کاری رو میکنم که پدر میخواد شهار رومین گرسنگان و عدالت ادالت زیرا آنان سیر خواهند شد. سومین و, و چهارمین رو، به حال رو میتونیم مثل یک دو بیتی ببینیم چون که یکی به دنبال دیگری میاد. وقتی شاول ترسوسی عیسای قیام کرده رو در راه دمشق ملاقات کرد، شاول حلیم نبود. او مسیحیان رو تسلیم مرگ کرد او به کلیسا آزار می‌رسوند. پولس در جاهای مختلف به ما میگه که ملاقات هیجان انگیزی با مسیح قیام کرده داشته. وقتی او با عیسی ملاقات کرد ایسا از او پرسید شاول چرا در مقابل دهن مقاومت می کنی؟ این برای تو خیلی سخته حالا وقتی شاول ترسوسی این سوال را شنید جواب داد خداوندا، می من چیکار کنم؟ در اینجا بود که شاول ترسوسی دهنه رو پذیرفت اینجا بود که او حلیم شد و تبدیل شد به پولس رسول بزرگ وقتی شاول حلیم شد اولین سوال او این بود خداوندا از من میخواهی چیکار کنم؟ به عبارت دیگه چه چیزی درسته ؟ پولس در نامهاش مثل نامش به فیلیپیان به ما میگه مهمترین دغدغه او این بود. در کردن چیزی که عیسی مسیح او رو به خاطر اون فرا خونده بود پولس میخواست بدونه که چه چیزی درسته ؟ به عبارت دیگه او گرسنه و تشنه ادالت بود حالا وعده داده شده که اگر حلیم باشید و دهنه رو بپذیرید و گرسنه و ووتشن ادالت باشید خداوند شما رو تماماً سیر خواهد کرد در واقع معنی کلمه یونانیش اینه که خداوند شما رو شبباه خواهد کرد. خداوند اونقدر شما رو با ادالت پر خواهد کرد که اشبا بشید حالا وقتی کسی از ادالت اشباه شده چه جور انسانی میتونه باشه؟ آیا او شخصی شریعتیه؟ او عادل هست به خاطر اینکه این, این و اون کارو نمیکنه و همیشه سرش رو پایین میندازه و جایی رو نگاه نمیکنه، آیا او چنین شخصیه؟ وقتی کسی از ادالت هم باشته میشه چجور شخصی میشه؟ خوب خوشابهال بعدی دیگه اینه خوشابهال رحم کنندگان کلمه رحیم یعنی با محبت خوشابهال کسانی که پر از محبت آگاپه خدا هستند باز هم وقتی به پایین کوه نگاه کنید و بخشی از راه حل برای اون دردمندان باشید باید کسی باشید که از محبت خدا پر شده باشید پر شدن از ادالت مترادف از محبت خدا هست. پارسا بودن به معنی مهربان بودن هست حالا وقتی ما محبت می اغلب میان بر می ما با انگیزهای محبت می کنیم و خوشابه حال بعدی اینه خوشابه حال پاکتلان زیرا ایشان خدا را خواهندی وقتی این افراد محبت می وقتی به پایین کوه می و با محبت وارد جمعیت می و به مردم دردمن محبت می به این دلیلی نیست که نیازی دارند و یا تحقیقی دارند که می انجامش بدن اونها حقیقتا پر از محبت خدا هستند و انگیزه اونها پاکه دلهای اونها پاک هست که محبت میکنند. مردم به طور غیر ارادی انگیزه شما رو سوال می کنن. اگر شما به کسی هزار دلار بدید قیافه اونها میگه چرا این پول رو به من میدی چرا این کار رو برای من می کنی؟ از من چی میخوای؟ باید برات چیکار کنم؟ وقتی کار خوبی برای مردم میکنید اونها بلافاصله انگیزه شما رو میپرسن شاگردان عیسی که اینجا توسط عیسی به تصویر کشیده شدن گرسنگان و تشنگان ادالت هستند خدا اونها رو پر از ادالت میکنه و اون عدالت در محبت واقعی تجلی پیدا میکنه که از قلبی پاک با انگیزه پاک ناشی میشه او میتونه وقتی به مردم محبت میکنه بگه تو چیزی رو که من میخوام نداری من فقط میخوام این فرصت رو داشته باشم که به تو با محبت مسیح محبت کنم. خوشابهال حال زیبای بعدی اینه. به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خواهند شد. منظور از مفهوم صلح در اینجا آشتی کردن هست. شاگردان عیسی مسیح با رفتاری زیبا واسطه آشتی هستند. بزرگترین مشکل در این دنیا بیگانگی هست. همونطور که در مقدمه بررسی کتاب مقدس دیدیم، کتاب مقدس به مشکل اساسی بیگانگی خدا و انسان میپردازه در ابتدا انسان خدا با هم در آشتی بودن اما انسان تصمیم گرفت و هنوز هم تصمیم میگیره که از خدا دور بشه و اراده خودش رو انجام بده و به راه خودش بره انسان از خدا دور میشه چون خدا قدوس است. خدا نمیتونه با انسان گناهکار و نافرمان هم زیستی کنه مشکل اساسی که کتاب مقدس به اون اشاره کرده مشکل آشتی دادن به جدایی بین انسان و خدا هست. اگر مردم با خدا در آشتی نباشند چطور میتونن با همدیگر در آشتی باشند به قول پولس بزرگترین پیام و بزرگترین خدمتی که به شاگردان عیسی مسیح سپرده شده پیام و خدمت آشتی هست. خدا در مسیح با دنیا آشتی میکنه و دیگه گناهان اونها رو به یاد نمیاره خدا پیام و خدمت آشتی رو به ما سپرده ما از طرف مسیح مأموریت داریم که بریم و به مردم بگیم با خدا آشتی کنید. خدا به خاطر عیسی مسیح با شما آشتی کرده. در نمای شاگرد مسیح او به عنوان یک آشتی دهنده ترسیم شده. به خاطر تمامی این رفتارهای زیبای شاگردان عیسی مسیح، اونها مورد آزار قرار میگیرند. در کتاب خوشا بهال‌های بیلیگراهام میگه انسان فکر میکنه اگر چنان کسی باشه که قلبی پاک و مهربون داشته باشه، نرم خوب و منزبت باشه، دنیا دور او جمع میشه و سرود میخونه اما دنیا شاگرد عیسی مسیح رو که چنین رفتارهای زیبایی داره تحسین نمیکنه شاگرد حقیقی عیسی مسیح در جفا هست چرا اساسا به خاطر اینکه او صلح هست وقتی به دبیرستان میرفتم یاد گرفتم که شخص صلح مورد آزار قرار میگیره توی بازی لگد میخوره یک دوستی رو دیدم که توی بازی با کسی درگیر شد به او چنان ضربه‌ای زد که تعادلش رو از دست داد من میدونستم که او بازیکن خوبی بود و نمیخواستم که از بازی بیرون بره او و بازیکنی که با او درگیر شده بود هر دو بازیکنان خوبی بودند فکر کردم برم و اونها رو آشتی بدم این آخرین چیزی بود که قبل از بیهوشی میادمه دوست من مشت محکمی به چانه من زد نمیدونم تا چه مدت بیهوش بودم اما وقتی بهوش اومدم چیزی یاد گرفتم میانجی ها همیشه آزار می‌بینند وقتی شما میانجی هستید، خدمت آشتی خودتون رو در کجا انجام میدید؟ اگر شما کسی باشید که بگه من میخوام به تمامی این درگیری و بیگانگی خاتمه بدم، برای انجام این کجا خواهید رفت؟ یک پیام‌آور صلح جایی میره که اونجا درگیری هست. جایی میرید که در اونجا مشکل هست و اون جاییه که خطر مرگ داره. احتمال داره به خاطر خدمت آشتیتون در بعضی از مناطق دنیا جانتون رو از دست بدید. شاگردان مسیح که سردهنده هستند به خاطر رفتار زیباشون، خدمت آشتیشون رو وارد کلیسا، محله، خانه و محل کارشون میکنن. هشت خوشابهال نمای شاگرد ایسای مسیح رو که راه حل و جواب برای مشکلات مردم این دنیا هست، تکمیل میکنه. در این هشت خوشابهال زیبا، ایسای مسیح به ما میگه که این ترکیبی از شخصیت کسی هست که شایسته نام مسیحه، در فضای موعظه سر ایسا عیسی نقطه عطف شاگرد مسیح شدن رو به ما نشون میده. وقتی به محتوای موعظه سر می رسید، عیسی شخصیت یک مسیحی رو به شما نشون میده. عیسی این شخصیت مسیحی رو توسط هشت خوشا زیبا و با چهار مثال متوالی به تصویر میکشه. در این چهار مثال شما خواهید فهمید که عیسی حالا چالش هایی رو عرضه میکنه که مربوط به تاثیر شخصیت مسیحی بر فرهنگ های مشرک هست بعد از گفتن خوشابهالها عیسی عملاً داره میگه اگر شما این رفتارها رو تجربه کرده باشید با فیض خدا این رفتارها شما رو تبدیل به نور و نمک دنیا میکنند مثل شهری که بر ای واقع شده و شم که در شمدان واقع شده و چراغی که در چراغدان واقع شده و نمیشه اونها رو مخفی کرد این مسئله ها چی میگند؟ این چهار مثل میگند اگر فردی با چنین شخصیتی به پایین تپه بره میتونه بر مشکلات جمعیت تأثیر بذاره کلمه فرهنگ کلمه دیگریه که بر کار ما تأثیر میذاره اگر شما یک خادم واقعی هستید و میخواهید که بخشی از راه حل عیسی مسیح باشید و میخواهید برید و ببینید که مردم در نتیجه خدمت شما مسیحی میشن میدونید بزرگترین دشمن شما چی خواهد بود فرهنگ چون فرهنگ میگه ما کارهامون رو به این روش انجام میدیم، به روشی که شما میگید انجام نمیدیم، به روش عیسی انجام نمیدیم، به روش خودمون انجام میدیم. ما به این فرهنگ میگیم. وقتی شما فضا و محتوای موعظه بالای کوه رو درک کنید، چیز دیگه هم خواهید فهمید. عیسی مسیح یک انقلابی بود. ایسای مسیح آمد که فرهنگ رو دگرگون کنه. اگر شما شاگرد ایسای مسیح هستید، نباید از بحرانهای گسترده فرهنگ ها بترسید. شما موظفید که هر روزه با این انگیزه برای خدمت بیرون برید من اینجا هستم که بر فرهنگ تأثیر بذارم اگر این چهار مثال و بقیه تعالیم بابهای پنج و شش و هفت رو که در جلسه بعدی اونها رو مطالعه خواهیم کرد بفهمید، متوجه سه چیز خواهید شد اول نقطه عطف یک مسیحی شدن دوم شخصیت مربوط به مسیحی شدن و سوم چالشی که مربوط به تأثیر شخصیت مسیحی. بر فرهنگ های غیر مسیحی هست تعالیم معزه سر کوه این سه مطلب رو به ما نشون میدن من معتقدم که ما باید مطالعه معزه سر کوه رو همون طور که شروع کردیم با این سوال خاتمه بدیم آیا شما بالای کوه با عیسی مسیح هستید؟ و از اون میخواهید که شما رو یکی از راهل ها و جواب هاش بکنه؟ و یا هنوز در پایین کوه و بخشی از مشکلات هستید و خودتون یک علامت سؤالید به لحاظ روحانی کجا قرار دارید عزیزان متشکریم که در این جلسه مهم با ما همراه بودیم. چیزی که امروز مطالعه کردیم موعظه سر کوه عیسی به اعتقاد خیلی ها مهمترین پیام برای دنیا هست. ما امیدواریم که شما هم بخواید بخشی از راه حل خداوند عیسی مسیح برای دنیا باشید از شما دعوت میکنیم که دانشجوی وفادار پیرو و شاگرد ایسای مسیح باشید و مجده او رو با همه درمیون بذارید و امیدواریم که ترتیبی بدید تا در برنامه بعدی در ادامه مطالعه سر سرکوه با ما همراه باشید.